این <بدایی> کار <سرخ> با بدهی خودتون پس می <بدای> فرستیم <سرخ> بعد سورت سال <سرخ> <سرخ> علب ابدالی شما با آلی سرین امتیاز در سال 1959 شاگرد اول شدهید ببین پدر این قراره ادی بده به من سقط 50 دلاره. پنجه دولاره دلار با این پول میشه یه ماشین خرید قشنگه نه آره ولی نه، پنجه دلار من را نرهت کرده میدونیم مخرج دامپزشگم داره تازه خرج هم هست میتونه تو غذایی من شریک بشه آه نه نه جمی تغذی باید کافی باشه تو خوب راشت کنن خب تا که بچه نیسته پدر تو قضا تو با اون شریک شو نه جمی باشه سلیه میخریمش میرم روزنامه میفروشم اتاقم رو اجاله بده من چالی تو گاراج میخوابیم خواهیش میکنم پدر خیلی متاسفم جمی من خیال میکردم من تو دوستی. هی دوست که هستیم ولی آخه منو پنجه دولار از کجا بیارم ها من اتا قدر نیستم بدهی دهیامونو به پرگذارم جمی پسرم دارچی مقدار کمی دارچی پس دارچین کجاست اینم دارچی اینم artık داری داشته باشه کتی حتما بازم برای صورت حساب فرستدن آره. آره کتی ما باید بازم درباره صرف جویی با هم صحبت کنیم خیلی خوب ولی اول باید حت فزنی من چی دارم درست میکنم قبولی؟ باشه بط بگو پودینگ آلو پودینگ آلو غلطه بگو سوسه سی ببین کتی ما باید صرف جویی کنیم خب من دارم همین کارو میکنم دارم با سیبای خودمون سه به خونگی خوشمزه درست میکنم میخوام اگه عدویش زیاد شده به من بگی باشه عالی بله واقعا عالی ولی بهتر نبود اول پوست سی باره میکردی؟ آه نه به هیچ بچون هرچی ویتامینه تو پوستشه تو خواشم هم ویتامین داره؟ تو اینو بهتر میدونی دانشمند خانواده تویی کتی؟ <تصفح> ما باید یه راهی برای یه جویی پیدا کنیم این صورت حساب خیات تو بزرگترین رقمیه که فهمیدم کجا میشه سرف جویی کجا؟ پول نهار تو چی؟ آه تو با داشتن زنی که میتونه برات غذا تهیه کنه دلیلی نداره پول نهار بدی من برات غذاهای خوشمزه درست می‌کنم نه نه گوش کن من نمیخوام هر روز صبح خاطر من نراحت بشی نمیخوام هر روز از کا بیدر بشی داشتن خونه برای چیه این جزئی از پیوند زن و شوی ما در خدمت هم تا مرد جدامون کنه فدر ادی آخرین اختیار به من داد آخرین اختیار برای چی رفیق برای چارلی او جمی حالا مزهیمی پدرت رز نشو عزیزم. اون خودش به حد کافی گرفتاری داره. همسایمون آقای هوپر یه سگ داره، با اینکه خیلی بزرگه با این حال هیچ وقت گرسنه نمونجه. همسایمون آقای اوپر کارمند خزانه داریه هرچی پوله دست اونست است. اون میتونه تا یه ظرفه نگهداره. دیگه <تص> عجبونی نمی‌گم. <تص> حالا بترفی. <تص> سلام فرید ببینم بچه ها شما اصلا چرا سفار یه موشک نمیشینم؟ سریع تر میرسیم. ما تفسیری نداریم افصال شما خرابتاره بودن که نقشه موترای قوی ها تر کردن اه. سنده با سکون. برای تو وکلی نمیتونی یک خوابی واسه این جبونه این لوس رو ببینی که انقدر مزهن نمانشن؟ خواب اگه تو میخوای باشی به هر حال قبول میکنم علتش هم اینه که کرای خونم عقب افتادی توزه شدیم مثلا گه یا قرنزو میکنم به جای حوش صحابه سروت کلونی بودم ساب احمدگی بخیر بلما حاضری ارنال بیدار شو بیدار شای دقیق کن امروز رفتارت مهدبانه باشه بری ازمایش امروز حذری؟ بسیار خب سهلا مردک خوشگل حال <تصفح> میدی امروز به حوش باشی؟ به خاطر من؟ حال میدی؟ خوبه میدونی اگه بازم تو ازمایش رد بشی عذرت از اینجا میخوان. فهمیدی چی گفتم یا نم؟ <تصفح> اگه بازم مثل دیروز رد بشی دکتر وقلی بس فرد اعصابانیت دیوانه میشه. اوردکی که نتونه دکمه زرد و از قرمز تشخیص بده فوراً از چشمش میوخته. باز چی شده؟ خوبه تو در این سس سیب میخوری خوشگله؟ خوشت اومده؟ میدونستم از غریبی اما ندیگه تا این حق پیداست <تصفيق> که تو هم نخونک زدیاره الان برات یه سودا میارم باشه دلی رو بسار دلی بله قربان چی خار میکنی من هم آدم برای وزمایش حاصلیم من بله لابات خودتون هم میدونیم که خیلی از برنامه عقب اختل برد. عذر میخوام قربان این چرا اینطوری میکنه آه... نراحت تو قربان نراحت چون باید امتحان بده <تصفيق> <تصفيق> خب اردک نه چی؟ اردک نه امروز نوبت امروز نه قربان بقیده من اون بتونه خودت خوب میدونی آخرین نمره ای که اون احمق از من گرفته یا زه امتیاز من فیلم اون در پذیرش کمی کنده کنده؟ بله قربان. این خودش امتیاز بزرگیه به این وسیله میشه عدم پذیرش دیگران رو کرد مگه سیار بسیار خوب. ولی این آخرین فرصته مستکرم آخری. شدم. شنیدید چی گفت؟ اگر رد بشی یه ثابت پکم برای همیشه آه تمام به صورتت که سوسی شده بیا بیجلو ببینم دفع آخر ده ثانیه شد ببینیم این دفعه چیکار کار میکنه آلی اردک از دفته این آزمایش بر نمیاد بیا اینجا این ساده ترین آزمایشات ماست ورداک تا اینجا 49 ساعت با این دستگاه کار کرده وقتی چه نتیجه کارش رو ببینیم. خوب براش فاصله زرد رنگ بکن فاصله زرد رنگ. اپتیک اپتیکش کرده بده، کرده قرار بده. نو کافی ادلی اینور نه نه نه اجازه بده یک دفعه دیگه امتحان کنه. فقط فقط یک دفعه دیگه قربان. برای چی؟ بی فایده چون شور نداره هیچ نمی‌خواد. رفیق، زرد رنگ، بورو. فسطیه بردو چقدر سمجی این واریه دوباره داری میدهد سراغشون نه نه نه نه پیدش کرده پیدش کرده لاقل اکس الامل نشنده آه نه خیلی خب دلی این بیش او رو از اینجا ببر دکتر قطلیب دکتر تصدیخ کنید که اکسل امالس جدن جالب بود این اردک موجودش گفتنگیزی یه بار بنامید خلق خا برنامه امروز چی؟ عشق گاما رویه چی؟ امروز روغن های سیلیکون داره مقابل مازمش بکنیم ازناه فنیل؟ آره نسبت تقریبی اختلاط نوتران های این روغن چیه؟ این چه صدایی بود؟ کدوم صدایم؟ خاطر گفتی کوک؟ من که گفتم کوک خدای بزرگ آه پروفیسر بیرمه این یکی از شگرده شماست آه بله ولی پیش شما چی کرمی ما هم نمیدونیم هیچی نمونده <سه> بود کباب بشه حالا حالا شبه؟ آه بله تاری نشده فقط یک کمی تکون خورده آه. خواهش کنم دیگه اجازه ندید شاگرداتون وارد از اشگاه بشن بسه خب بسه خوب تو امروز واقعا خیت کاشتی خب حالا باید یه جایی برای این رو رفوزه پیدا کنیم شون از اینجا اخرج شده یه اردک؟ بله همون که گفتی یه اردک من که یه اردک خواستم ببین رفیق من این برای تو ک برای چی آوردیش؟ یا باید می میآوردمش اینجا یک میذاشتم زنم مستخدم کبابش کنه. چون در آزمایش موفق نشود دکتر قاطلیب دکتر یعنی خرجه نگفت در یک از این بیشتره. ما که نگرانش نمیداریم. راستش تنها آرزوی پسرمون داشتن یک توله. خوش کن کتیما در این باره حرفمونو نذریم. من فقط هم یه جایی بر این ارده که احمق پیدا کنم. آقا گفتم شاید کشاورز بگیره همونی که اغلب سبزی برمون میاره و من از پرداخت پولش عاجز میمونم. منظور آقای گیلبیئه. آره آره همونی میگم. آقای گیلبی راننده ماشین توزیع نونیم. آقای پردام سبزی فروش ماست آ پردام خیلی خوب ما که میدیم با آقای تو مزرهش بردک خیلو پش میگذاره احتمالای غذا شم از اینجا بتره هی پیدا به نظرم از من خوشش اومده هرجون میرم دنبالم میاد بیه خوشگله بیا میخوام یه اسم بزرگ و معروف روت بذارم چالی از این اسم خوشت میاد شاید بتونم ایک یام یادش بدم به اون؟ به همین خیل باش آلبرت داشتم فکر میکردم تبریک میگم میدونی؟ به جای اینکه که اون اردک بیشور رو بدی به آقای پردام شاید جیمی بتونه یوزش کنه کسی ما حرفمونه زدیم یادته؟ یادمه ولی منظرم اینه که این کار برای خرجی نداره جیمی هم خوشحال میشه فراموش کن نباید این رو مطرح میکردم کی رو نباید نطرح میکردی؟ آه هیچی خودتی مشکل رو حل میکنی کتی توازیش بده کدوم مشکل؟ اختلاف بزرگ و وحشتناکی که بین خودت و جیمی به وجود آوردی будут посбивать его прямо ага камера мне же не видно его вытаскивать давай таё ты мне боли не дай он одежды а talvez мне хочу спиру сам ему есть когда я давай говорить не дай что что outside на рулет это ну гордоку не хочет бега Hola, bueno. Puede pedir o de actualizar, actualizar si habiles. Deje, por negocios. <laughs> Sanne Sanne Sanne Sanne Sanne آه چرا اوه اوه رفتی اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه Charlie! Tämä <tik> جدا مهم نیست. <تصفيق> آخه چطور تونست در حالی که سگ بهش پارس میکرد تخم بذاره؟ او نه نه نه نه نه نه نه این نوعی عکس هر وقت سگ بهش پارس میکنه این اردک تخم میذاره حالا چرا نمیدونم توی آزمایشگاه با این کار کرده. آم. ولی مادرم یه جور دیگه برام تعریف کرده بود. ما هر حال مهم اینه که دیگه تخم مرغ نمی‌خریم و پولش رو میکنیم جویی می ما, ما, ما, ما نباید نباید تخم این اردک بخوریم. منظرم اینه چه اردک این که موجود عجیبیه. آه آه نه نه نه نه تو متوجه رو من نشدی این این یه بحث بیولوژی جدی آره مرون اردک از شده حتی تحت تشاشوام بوده بنابراین این تخم اون اردک خوردنی نیست خوبه پس چی می‌کنی برید چالی خوبه هیچ اشکالی نداره میشه گذاشت زیرش او نه. نه نه نه نمیشه گذاشت چون ممکنه ندره جوجه در بیاد فقط بدون نره خاک کف وقتی جیمی خب این کارو of البهاری. معلوم هست تو چی میکنی؟ هیچی هیچی هیچی نصف شب چالکندن با پیرجامه اسمش چیه؟ نه دارم میکنم دارم میکنم برای چی؟ میخوام کرم مگیرم آه. چه تقمای بزرگی هم گذاشته <تصفحه> برای بخواب بر یه تختت چه می؟ دلی بله، بله دکتر قطب، من با من کاری داشتیم. بله من. من مشکلی دارم قربان. بسیار يا اخو بشین بشین خب. دکتر قاصلی، آیا امکان داره؟ در علم امکان همه چیزی هست علی. بله، آیا امکان داره و باعث بشه ساختمان مولکولی تخم مرغ تغییر کنه قربان و یک چیز دیگه بشه؟ پیداست که برد یا بیالوشیال آقابن من دیدلیم سب کن بیا برای شروع این رو بخون راستش من فقط میخواستم بدونم که جواب قصبته ولی در چه ماورد؟ تخم پرنده خب تخم چه نوع پرنده؟ مهم نیست مثلا مرگ بغلمون اردک اردک اسم اردک و جلو من نبر عذر میخوام به هر حال این آزمایش قبلا انجام شده در سال 1903 به وسیله یک دانشجوی پزشکی در بیمارستان دولتی ویان اسمشم گویان شولس یا اشمت بود آره <تصفح> شوارس گوش کن برای پی بردن به اثرات شغروی ها گوتوالد شوالز تخم مرغی رو در معرض تشعشعه رادیوم قرار میده در نتیجه مولکول‌های ارگانی و غیر ارگانی هر دو تغییر میکنن فهمیدین بله, بله بله بله در سفیده تخم مرغ تغییری پیدا نمیکنه نه نه نه ولی زرد به نحو عجیبی تغییر پیدا میکنه زرد زرد درست درست درست, درست. منظورم اینه که آزمایش جلبی بوده ببینم قربان ضربه که تغییر شکل پیدا نکرده بوده یعنی فلز نشده بوده ها فلز مثلا میخواستی چی بشه طلا <تصفيقا> خودتون گفتین در علم امکان همه چیزاست امکانش بله هست ولی ساختن طلا از تخم مر <تصفيقا> باور کردنش تا حدی مشکله نه؟ <ضيف> بله بله ولی طلای مصنوعی که سخته شده این کار نیست بله بله با بمباران هسته ای ولی این کار حزینه سنگینی بر میداره به سرطه نیست <اقید> بله بله ببخش دکتر گتلی ما علمی هم مذارت میخوام باید در آزمایش هوش میمون حاضر باشم. نمره 100 چهله. آسمان بالاتره. رویه فلزی که بماددی چندین آزمایش انجام دادی عجیب ترین فلزیه که تا امروز بهش برپستی قسمتی از این گزارشو به هیچ وجه باور نمی کنی قبول کن از عجایب پس نیست نگاه کن دلی فلز محتوی مقداری اسید گالاکتارونیک دی است این به نظر عجیب نیست خودت میدونی چیم اون پکتنمه پکتن پکتنی پکتن که تحت حرارت شدید آبش گرفته شده پکتن در پوست سیب وجود داره آه. آه. پس سوسه سیب نا نه, نه جدی میگم نگاه کن مقداری هم سیر دیده شده آه ولش کن بابا یه طلایی سگی نمیخوام دون بلش منظورت چه طلایی است تقریبا طلای ناب چی منتها باید دیگر اجسام خارجی عجیبی داخلشه اونم اجسامی که نتونستیم تشخیص بدیم اجسامی که بین 1 تا 3 ماده شناخته شده دیده نشده. هم آقای دلیم نکنه نکنه شما وسنگی از کره ماه دسترسی پیدا کردیم. سنگ ماه من نه نه نه نه من پاما از کالیفرنیا بیرون نذاشتم این طلاع از کجا استخراج شده؟ استخراج کدوم استخراج شاید رسوبی بوده ها؟ آه بله بله بله میشه گفت به شکل رسوب بوده خیلی است من مسکرم سب کنه این گذارشو نه این بریم پولشم پرداختیم؟ آه چرا چرا چرا البته البته مسکرم خیلی مسکرم خب که این نتیجه از منظور؟ اشکاس منظور؟ به همین دلیل به رو ثبت دار چی رو صعب بده؟ راستش میخوای این گزارش راجع به زرده ی تخم اردکی. او دست ورده آلبرت ممکنه مغز پر از قانون تو این قبول نکنه ولی در سال 1903 این آزمایش عملا انجام شده. کتاب افسانه‌های های رو نخوندی اردکی که تخم طلایی آلبرت فکر نمی کنم صلاح باشه با این واژه‌نامه‌گی کنی. گوش کن چی میگم فراد. باید بعید نیست داستان اردکم ریشه علمی داشته باشه. بحث بکش کنار الورت من میرونم. خیلی خوب شکاکی. حالا که منو باور نمی کاری می‌کنم که اردک جلوی چشم خودت تخم بذاره باور کن رانندهی به هماغتتون نبیدم آرلا آرلا من که تو ماشین سمو نر بینم حالا دراز بکشو کاملا استراحت کن حتی یه لحظا به اداره خزانه داری کل فکر نکن متجربه چقدر خوبی بیا فرند این آخه کسافاتت به من زب بکن آقا من به تو آمیدوار بودم میدونستم بلاخره این کل میشه علا رقم این که پدرم میگفت به این جوانه تمبل ازدواج نکن من خودم کاری نکردم کارا چرلیه تخمهی که میخواستم خواه کنم یادته میدونی اونا چیان؟ هم؟ اونا تلان اینطوری این نگاه هم نرکن سر سرت نمیذارم جون تو راست میگم او البرت من بابر میکنم پس چگه نراحتی؟ ارده که دادم با آقای پردام تو چیکار کردی؟ البرت تو خودت گفتی نه, نه نه نه خودم هم نراحت شدم چون جیمی همینطور دوره عشق میریده نه نه نه نه باید باید آرد پاس بگیریم می ترسم سرش بیاد می ترسم می ترسم بالاخره پیک پخشی آه آه آه فردم کردم بیا پریج پیش به پای بالا استش من، من هزرم پنج دلار بخرمش. نه، نه، توی شغل کردی این پیداش نمیکنیم از اون لردا که نیست که داشت ولی جاوا بده. شارلی شارلی. نجایی. یکنی چیکن دریم. چارلی یه ربانکه حیوانه. نه چیزی که اون اکسل عملش میکنه. شارلی. زود باش پارس کن پدر. آه. چه این شرای میسو پارس کن. رف رف رف رف رف رف رف آیا صاحب اینم شد کار یه مرد بالک با دکترای حقوق باید زانو بزنه رو زمین مثل سگ کارس کنه تا اردکیو که تخم سلائی می‌ذاره پیدا کنه اونم تخم سلائی ناد من دیگه چیزی که نمی‌بینم اون را حد نشو جیمی تو کاملا شکست نخوریم مایوس نمیشیم بالاخره پیداش می‌کنی کو کو کو کو بیا شارژی کو داری میری هی فرار حداکثر فرار میکنن بیا فرد بیا خلاص کن یاد بگیر یاد بگیر چا چون یاد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 هی هی ثبت کنی که جا ببین برگردی کمک کنید برگرد با با بدونستم پیداشت میکنم مطمئنه که خودش بسرم البته که خودش شالیه خب ثابت کردن شالیه سونه نگهش روزمین فرد رفت رفت رفت رفت فقط با پاشت سگه هوپر توخ میذاره به تو محل نمیذاره رفت رفت رفت رفت رفت رفت رفت رفت هی آلبرتون مثل سگ خوپر پارس نمی کنی اونی اینجوری پارس می کنی رفت رفت هههه hey, hey, hey. تا نتا چه پیدا کردی؟ فهمیدم فهمیدم کاملا نمیتونه. کنید باید تنتر پارس کرد رفت رفت رفت رفت رفت رفت هم بله نظره چیه شکاک سر ما در نظر گرفتن وزن زرده و مزنه طلا تلا در بازار آزاد هر زرده 900 دلار ارزش داریم امین طوره گفتی اون چهار تا تخم رو در چه مدتی گذشته بود؟ حدود ده دقیقه پس میشه ساعتی 20 هزار دلار. اگه روزی شش ساعت کار کنه با کتر وقت قهوه خوردن ما و غذا خوردن اردک آ چطبیه که روزی ست هزار دلار درآمد ببره همینطوره به شرطی که بتونم رو پیدا کنم وگرنه فایده نداره او پیداش می‌کنی پیداش می‌کنی مشکل بزرگ اینجاست که ثروتمون رو چطوری قانونی حفظ کنیم تو گفتی ثروتمون منظور چیه ثروت من بله گوش کن رافی رفیق شفیق این حرفو به خاطر خودت زدم اگه منو با خودت چریک کنی دیگه مجبور نیستی وکیل بگیری یا کلی پول بهش بدی آها من باید مخمو به کار بندازم و دائم به این فکر باشم که چیکار کنم اداره مالیات بر درآمد سرمون خراب نشه لباسات خوب برات خوش کردم ر <تصفح> متشکرم چطوری تونستی تنها این کارو بکنی چتی او هیچ کاری نداشت باور کن <تصفح> متشکرم گوش کن، به سلام باید, باید کاملا سکوت کنید تا من ترتیب کارا رو بدم. راجع به این موضوع با هیچ کس حرف نزن، به خصوص با کوپر. آره، پس کونچکا، اون نباید به هیچ وجه تحریک بشه. میدونی اولین این که میکنم می‌کنم؟ کردن اون ماشین قراضه هست. یه ماشین زرد دو در دیدم، نمی‌دونید چیه، پسر. بیخواد فعلا نباید اون پولو خرج کنید. چی؟ سقف زندگیت نباید به هیچ وجه تحریک کنه. صورت حسابم نپردی. اونارو چرا؟ ولی تو جنب یه قانونی به این کار ندادیم کسی نباید بهمون مشکوک بشه. خب، طب... چطوره همه بریم بخوابیم آه... مگه این که بخوای اردک رو بیاریم پایین ها چند دفعه بهش پارس کنیم نه، اردک الان بقیل جیمی خوابیده نمیخوام اون از خواب بپره و نراحت بشه اه فرید، آه؟ یادت باشه حاله هموم منو برگردونیم اونجز به انبال شرکت نیست اطاعت میشه شریک میتونیم اون سر و صورتی بدیم چی میگه؟ اصلا میتونیم یه خونه قشنگ بخریم میتونیم یه شهر بخریم خب به چه دردمون میخوره؟ آکه تیفقت هستم قدرت مالیمونو برات مسئل بزنم چیزی گیرمون اومده که دیگران خوابشم بینن من که گاهی به شدت همین امینطورم هست آلبرت می تونی بگی چقدر ثروتمند میشی؟ اینقدر که احتمالاً نمیتونیم خرجش کنیم. پس شروع کنیم دیگه. چی گفتی؟ حترم در خرج کردنش کمک کنیم. آ ما خیلی متشکرم ولی نباید بیشوری کنیم. نباید بی خود و بی جهت کنیم. از قدیم گفتن باید با هرس جنگید. با چی؟ هرس، هرس. خلیه در سر هرس می خواد که سیه نشستم ولی ما اینقدرم نیستیم ما خون سردیمونو حفظ می کنیم واستو با اروپا yeah <laughs> موازه بشم حالا دیگه بایی موازه باش سگ آقای هوپر اونو نگیره جیمی زود باش بارو ترسم دیر به مدرسه برسی خدافیل خدافیل بله آه، کی آه, اه، بانک خب سلام چیک برگشته خب خودتون اونا رو چاپ کردی آه منظورم اینه که برکه به با اون بزرگی چطور نمیتونه اون مبلغ جزی رو بپردازه مبلغ چک خیلی کمه نه نه خانم ادالی ما نه شما آه بارها به شما تذکر دادیم که نمیتونیم بیش از موجودیتون تو حساب جاری چک بکشین ممکنه زندانی بشین نه این کار نکنین نه خواهش میکنم باقای با دالی هم تلفن نکنین من خودم اون پول جور میکنم آه میشه چند لحظه گوشی رو الان انم بر ش حرامه. سپسی، سپسی. سپسی من الان میام اونجا این دیگه چیه خانم ادالی؟ کسی موجودی داره؟ این دیگه چیه؟ اید. این، این کلاس و باید اضافه کنم ارزشش دقیقاً 900 دلاری. اینم ورقه دریافت وجه بانک این ورقه که به نظرت آشنا هست؟ لطفا <تصفح> لطفاً اجازه بدین. از این طرف را آه نمی فهمم. این دیگه چجور بانکیه بفرمی خنمه دلی متاسفانه نمی تونیم گروهی به جایی وچ قبول کنیم گروهی مگه اسم تلا بگوشی شما نخورده آقا جون آها خنمه این حتی اگه شمش تلا هم بوده من نمیتونستم. تونستم شمش با عنوانی کست موجودی حسابتون از شما قبول کنم تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اینو به خزانه داره یه کل تحویل بدیم ملاحظه میکنین که این کار کست موجودی شما رو تامین نمیتونه نه که میبرمش یه بانکت دیگه اونام همینه به شما میگن تنها جایی که میتونین اینو ببرین مغازه ی زرگریه زرگری؟ آه اینو تو حراج خریدم آه. اگه برای اون کالای چک کشیده باشیم دوبرا کسر موجودی میاریم نه نمیاریم امروز 900 دلار پول به حساب گذاشتن 900 دلار از کجا باردی؟ از زرگری گرفتن ا... نکنن سخمه ای ارده کش رفته باشی به اونا دست نزدم چارلی برام یکی گذاشت چی؟ چرا سخمه ارده که باردی به زرگری؟ مدیر بانک گفت ببرم اونجا مادیر بانک گفت؟ اونی غلط کرد؟ نکن یه وقت چرت به جراید گفته باشی. می جراید نه فقط به بانک. گفتن اگه کش موجودی حسابمون پر نکونن دستور جلبم صادر میشه تو ترجی می دیدیم عادی باشم. نه لا لا لا لا. آ چه شوهری میخواد نیش زندانی بشم. مگه نشنیدی فرچ چی گفت من نباید بذارم کسی از جراید با خبر بشه. ولی من مجبور شدم. سلام شرکا. بهش بگو چیکار کردم. کی چیکار کرد؟ یه تخمه اردکو به زرگری فروختم. خوبه. بله، جز راه دیگه‌ای نیست چون پروانه معامله طلا نداریم. پس تو مطوچکارایی برو پروانه بگیر پیش خودت موجعسن کن رفتم اداره خزانه داری یه کولم میگم پروانه معامله طلا میگم چون اردکی دارم که تخم طلا میزنه بسه بسه مزررت کاملا میفهمم پوپر نمیتونه به ما کمک کنه اون کارمند م... خزانهداری داری پوپه پوپه طوری میپره اردک که حیونی از تخم میره ما فعلا باید هر چی طلا هست از اینجا خارج کنیم چرا چون خلاف قانونه برای نگهداشتن طلا ده سال زندان تعیین شده بگی بخو حالا باید یه چیزی سر هم کنیم که به زرگریا بگی چرا اگه بری به اونا بگی اردک تخم تلایی میذاره میندزنه تو تیمارستان خب من گفتم و هم نشد تو گفتی ولی سب کنی تو که بهش نگفتی تخم اردک از کجا اومده نه اون ازم پرسی آه نه حالا همه دنبال این اردک میگردم وقتی بهش گفتی چی کار کرد هیچی فقط زرد زیر خنده که زرده زیر خنده اه اه اه <تصفح> تو هم شنیدی دیال طرف فقط پندیده به نظر متوجه نشدی کتی مشکل حل کرده با اینکه حقیقت رو به اونو گفته با این حال اونو قبول نکردن در این صورت بعدا میتونه از همین روش استفاده کنه اوه کن نه, نه نه نه نه من نمیخوام بذارم تو هچل گفت یکی تو لباس نبشیدی آه. گوش کنم این لیست زرگری ولی در فروش تخما افراد نکن سهر کن سب کن بینا فراید کیفت هم که عوضت دید این کیف هم نوهه مهم نیست دوست عزیز باید به زرگری های مختلف مراجعه کنی اگه مرتب به یه زرگری مراجعه کنی مشکوک میشند پهمیدم چطوره برای این کار چند از لباس نوه بخرم آه نه نه نه نه این کراواتت هم که نوهه خانم ادلیم بله بله هیار این طلا خیلی بالاست خانم مدلی حسابدار داره چکتونه صدر می کنم. متشکرم اینه گوی های طلا جدا جالبن تمام تقریبا به یک شکل و یک آه، بله خودم دیدم خواستم بدونم چطور به این شکل در اومدم راستشو بخواین اینا تخمه اردکه تخمه اردکه آه خوبه این چجور ورداکی هست خانم عدالت؟ ورداکی سفید ورداکی سفید کوچولو ها خیلی متشکرم بفهمی خانم عدالت خانم عدالت گوش کنیم درباره این توهای ذره خیلی متاسفم من باید برم بای خانم عدالت ما نشانی شما رو نداریم ايش نداره خودم دارم سازنده در من کارترم از کمپانی الکو چیز عجیبی به دست من رسیده شما بخواهید درباره اش کنیم؟ نه رم ترچین ماشین قیمتش چند آقاه؟ هزار و نهصد و نهود و پنج دلار تمام قیمت یه دو جین تخماررککم نیست چی فرموی؟ هیچی شما این ماشین او هم میفروشین مترسفم من خودم هست می زدم میدونین الان نمیتونم توم بفرمش ولی دوباره بر میگردم باید به اطلاع آیون برسونم طبق تلفن هایی که به یکی از خزانه خزانداری کل شدم این نقشه محل زرگلی هایی رو که طلای را میز به اونا فروخته شدم نشون میدم تلایی که باعث تعجب همه شده حوییت این باند هنوز کشف نشده ولی پیداست که یک باند مجهز و خطرناک زیر زمینیه بل شما زیر سر مافیا ساییست احتمالاً <تصفح> یه باند خطرناکتر خطرناکتر؟ آقایون شایدم کاری پیمیاگر باشم چی میدونم؟ ام. امکانش بسیار ضعیف این عمل فقط به وسیل بمباران هستهی مقدوری که مقروم به سرفه نیست این خود بیتر میدون خودم میدونم منظور من این بود که شاید اونا موفق شدن تلایی بسازن که میتونن ارزون وارد بازار کنن تلایی که های ما با تمام سعی و کوششی که کردن نتونستن اجزایشو کشف کنن تلایی که داخلش حتی پکتن پوست سیبم وجود داره پوست هر هر نکن هوپر فراموش کردی تو کفک نونی که همه هر روز می میخوردیم چی کشف شده؟ پلیسلین او نه نم آقای مرگان نماینده ی بانک زخیر آمریکا اطلاعات جامعی در این باره دارن که بیان میکنن آقایون اینه اینه این این کار نباید نباید دیگه بی خیده بکنه منظورم اینه که به پول ما نباید نباید لطمه می بارد میشه این وظیفه تمام ماست که هرچه زودتر هر چه زودتر زودتر این بانده خرابها رو ری شکن آقایون من می‌خواستن می‌خواستن به اطلاع برسونن که اگه این خبر از این اتاق خارج بشه ما من... برای بفرمایید ما اینجا برای شماست مدیر عامل بازار بورس نیویورک میگه فوری شاسی شماره یک رو فشار بدیم سلام باب چی ای... چی تی... تی... کدوم شایه‌ای تلای مصنوعی په... دوته تو دو... تو دو از کجایی رو شنیدی من او... سلمونی خدایی من از سلمونی شنید او نه باب نه نه نه این شایه کاملا بیاساسه باب کاملا بیاساسه حقیقت چو بخوایی ما خودمونم این شایه بی رو شنیدیم منطقه ما کاملا بر اوضاع مسلطیم خواهیش میکنم از گول من به زعمایی قومبال بگو ناراحت نباشه اه بل با روحب روحب بل بله باب بله باب بای بای باب خدای من سلمونیش از کجا شنیده بفرماید بازم برای شماست باش رو مره ای دو ولو ولی خود خودمم بزارت خارجی آیون بده ای. سلام راج نه راج اینه این فقط یک شایعه است شایعه یا غیر شایه هرچی است میتونه پیمان های مالی ما رو به هم بزنه <تصفيق> قبول کن راج قبول کن ما کاملا بر اوزا مسلطیم نه غربان مطمئن ماشین مطمئن ماشین این خبر به گوشه هیچ کشور خارجی نمیرسی اینجا بانک فرانسه است صافیق امریکا رو بغم بگیر شهر داغن تلا وقت کنن بس ما چی کاریم دا دا دا دا دا ما رو ساده نمیکن حالا میکن شرا سپاه اگه امریکایی تلای مصنوعی ساخته باشن کلک ما کنده است. قرمون لشو پیدا کن اگه آمریکایی ها اونسی ده دلار میفروشن ما اون هشت دلار و نوید و سنت میفروشن بنده بنده بنده بله قربان بربان قربان بربان. بله بربان بنده کاملا متوجه هستم گربان میدونم با چه مشکلتی روبرو هستیم بله بربان کاملا بله بربان متشکرم آقایون وزیفه شما کاملا روشنه رتلچ هم تو مسئول این کاری خب شما از این بند چه برگهی دارنده ایست چه هم هم برگه بله تا اینجا تنها مدرکی که داریم اسم فروشیم. یه زنیم یعنی با اسامی مستار مختلف از قبیل که دبلیو دلیم یا کتی کلاوس داریم خانم مالبرت دلیم فرانسیس عبیگل داریم گفتی اسمش خانم آلبرت گلی آلبرت داری؟ هون همسه یه همسایت به بی تفصیرم با اول من خونه خریدم بد اونا اون بدنه و آلبرت و چطیدالی من از مدت ها بیش و اون زوج مشکوچ بودم شریف من که این مموریتی داره بله خودم دارم میبینه مرز هم همسایه عزیز حالت گوبه چطوری طوری مامانی من خوبم خوبم آه، خوبی چی شدی؟ بخواب چی؟ میدونی من یه مرخشی کوتاه گرفتیم هم کش پش پش, پش پش داره گلا رو مرتب میکنه خدا قوت کوپر به ما مزنون شده تو چی بون گفتی؟ اصلا ما اون حرف نزدم خب با جیمی چی؟ چرا با اون حرف زدن؟ بلاخره هرچی باشه پسر ما اینه چه خودم میدونه؟ چه داشته یه ها به هوپر مضمون شدی؟ رفترش روستانه شده مدرک از این بهتر فرید چرا اس کو جا چطوره خوشگل مگه نه ببین آدیو شی نه جا برده مگه قرار نبود ولخرجی نشه وسط زندگی تغییر نکنه چرا پیشنهاد من نه تنها نفع بزرگی برات بود من دنبال همین ماشین بود پیداس خوش‌طلیقی به کمک فریجونت استبلتو با این ماشینا پر میکنی. چرا ما نباید هم کی ماشینی داشته باشیم کتی کی کی چرا اینقدر ندید بدی شدین چرا چشمتون فقط به مال مردمه منو بگو که مغزمو به شما فروختم آلبرت این اسم شرکت به نظرت چطوره؟ اوراق خروجی دلی و حمام سونا. آره. قاب این چرتپی به طلا داره هیچ یه ردوام کنه مالیات هیچ تعلق نمیگیره او عالیه عالیه ولی ما فعلا مشکل بزرگتری داریم یعنی یه مشکل تازه هوپر تا اینجا به ما مذنون هوپر بله امروز با من هرصد از هوپر گذشته من هنوز نتونسم عملیه رادیواکتیو به طلا منو پیدا کنم وگرنه نتونم عملیه رادیواکتیو رو پیدا کنم نمیتونم میزان اثرش رو بفهمم وگرنه نتونم میزان اثر تورماز تورماز تورماز هر رو تو بزن اگه نتونم میزان اثر ردیو رو پیدا کنم همین روزاست که کار متوقف بشه. متوقف بشه؟ یعنی اردک دیگه تخب تلایی نمیذاره؟ نه خیر نمیذاره چرا؟ یعنی ممکنه اردک همین الان از تخب مفتده باشه؟ بله امکان دارم برو بیارش حال بیارش بیارش امتحانش کنید کتی کتی اردکو بیار حالبر چرا داد میزنی؟ من که گوشم سنگین بیرونی. منظوره چیه بیرونه؟ جیمی اونو برد با ماشین برادران وادلو یه کمی بگردونه برادران وادلو؟ خدای من اونطور که اونه رانندگی میکنن دقل چارلی اومده هست از تو رفته بیا چه محاکی گفتی من چارلی رو میبرین گردش انقضا جوش نزن مرد میری نمیشه باطن رو ببینید سردش برای لانتومد کن آه. هی ای قرار اینجا بموری با دست و پا جام جمع کنی فهمیدی. ارده پاسه جا برده الان کباب میشه برشتو ای اربین اونجا را خوشش اومده الان که از حال برا جمی حاضر اونو بفرشی، اونو دو دولار میخریم ازت نه قربان اون دوسته منه Äh, je väitin فری تموم شد پسرم. آن قراره منو چالید و با خودشش مبارزه کرده. آه نه نه نه نه این اردک سواره اون تله مرگ نمیشه پسرم. خدا سخته این آقای جلی مال اردک مال جیمی نیست. آره شما به حقوق فردیان تکات نکنید. حقوق فردی نیست چونی حقوق مالیه. آدم کشا. شیر. آلبرت جیمین داره گیریم کنید. من کارش نکردم. رف. رف من فقط از اردک کردم چون دروازه خیلی بدی قراری گرفته بود. رف. ما مجبوریم اردک از جیمی خلقیت کنیم بله بله همین کار رو میکنیم آلبرت حق نداری این کارو بکنی جیمی اردک دوست داره اون دوستشه تو چرا با پسرت زید شدی که میگه من با پسرم زید شدم اگه چارلی نتونه تخم بذاره میدیمش به جیمی امتهم کن آلبرت سو باش رف رف رف رف رف رف رف چه شروع آیت مرده باش وای سرم آ جیمی سلام جیمی تو چقدر بزرگ شدی حالا کنی نبیه این طرف میخوام یه چیزی رو نشونت بده من اجازه ندارم بیام اون طرف آه اشکالی نداره من یه هدیه برای ورده بیا <تصفيق> آره میدمش به تو چون واسه برادر زدم کچی چه ریجیمی جون جانمی چه محشره تو چه اردک خوشگل و مامانی داری جیمی شاید میبندم شاید میادم روزم مرتب واسه تو تقم میذاری آره ریکل چی کسه یه چیزی بگم من هنوز تقم اردش ندیدم به نظر تو میشه کاری شد اردک اردش تقم بذاری جیمی؟ نمیدونم پدرم بلده بهش پارس میکنه راستی پارس به اردت پارس میکنه چطوری من پارس کنم تو بیا اینجا اینی نیگرشتار من بهش پارس میکنم باید بیش رو کنیم ببینم این اقا نیست نه تو گذاشتی زود برگرد خونه جمیه من داره ببین آقای هوپرد دوشن خیلی قشنه هیم همین الان جمیه چارلی رو بیار زود باش و شما آقای هوپرد تخم اردک همسایه رو می دوزدین خجارت هم نمیکشی. حق با توی آلبرت هوپر فهمیده نه نداشتم تخم اردک رو نگر داره آلورت من نمیتونم اردک رو تمام روز تو خونه حبس کنم گناه داره انصاف نیست بله خیلی خوب فاجه او هوپر فهمیده تو برو منزل منم به منز اینکه که از اینجا جیم میشم آه! اه، تنها چیگی که یاری یه اردک کوچیکی گفته اردک؟ بله اردک که اینطور لابد نگردشتن اون اردک مرای یه ردگم کردنه ما چه بچه نیسیم نه یه اردک عادیه میدونی این اردک تخم تلایی میزنه حقیقت داری یعنی من با چشم خودم دیدم میدونی بهش پارس میکنه بهش پارس میکنن بله میرسی سر بش پارس میکنم تا اینطوری بهش پارس میکنن اردک میشنه و یه تخم تلایی تحویل میدیم بله اینطور؟ خودم این کارو کردم تو؟ تو تخم تلایی گذاشتی هوپر؟ او بله کار آسانی ده بوده ولی نه من تخم نداشتم من بهش پارس کردم اردکه تخم تلایی گذاشت آها بله خب خیلی جالبه هوپر خیلی ببین چی میگم فردا صبح بیا دفترم چون لازم شد کمی با تو صحبت کنم <تصفيق> اه ولی رئیس چون سب کنیم ممکنه باور نکنیم ولی اردکو بیاریم تا به شما من ثابت خوب. تو الان چند وقت اینجا کار میکنی؟ بعد سال تورم اید رئیس اجازه بدین من توضیح بدم من با دکتر گتلیب تو دانشگاه تماس گرفتم اون گفت دلی مدت هاست میخواد از تو خمور تلا بسازه حقمو خیال میکردم سر به سرم میسره ولی با اطلاعاتی که هوپر داد علاهای مورد بحث مگه همه به شکل زردی تخم مار نیستن؟ آ بس کنین تمام این حرفا شبیه افسانه است که برای بچه ها میگن. البته رئیس ولی واقعیتو در نظر بگیری. من چه فکر می‌کنم هوپر صحبت می‌کنه او ولی آقای مرزنی هنوز مسجلش ند ولی فهمیدیم یه اردک تخم طلایی میکنه. اوکی رو بده من هوپر. متیشت سو. سلام حالت؟ من راتل چن. نچکرام تو چتارایم خب بله تحقیقات تا این مرحله نشون داده که پای اردکی در بینه و اون تخم طلایی میکنه نه اردک سفید آره اره یک کلمه یه کلمه درز نمیکنه مردام یک یک اردک کوآ کوآ کوآ کوآ کوآ اوغدا کومعمل کنه ها چی میخوام بدین مادنو به و به هر چه اردکه اون شکلی برخوردی فارم بخوره نقشه اردک آمریکایی رو به بی دست بیار و هم شکلیشو بساز با پلاستیک اردن تره اطاعت می شم مسیار خوب اقیون عملیات شروع می کنیم کار بسیار مشفلیه کتی چرلی کجاست؟ بالا پیش جیمیه خوبه باشه ما, ما همین رو می‌خوایم اردک باید فوراً از اینجا بره اگه باز هم از اینجا hash باید فردا نه چی کار می‌کنی اول تخم اردک را؟ من دارم به من چی کار می‌کنی فقط بدون مسئولیت تخم اردک بدم. بلی کجا داری می‌ری؟ 23 کریت میگه. من یه اردک مال هست. البرت برو ولی اردک رو بیار گوش کن چی که کاتل لازم نیست من دستور بدیم مؤسسه شرکت تخم اردک منم. حالت هستیم گرفتم برم مرده که بیارم پایین؟ سلام همسی از چطوری؟ ایتی از هم آوردن آوردم به تو معرفی کنم کارمندای خزانه داری کنه آقای ردلیج خوشبخت مقیون نلنگ گرفتارم نطفاً یه وقت دیگه بیاریم سب کنید کارمند خزانه داریه کل بودن به شما اجازه نمیده بدون اجازه وارد اینجا اجازه بزن. که داریم اه اه این هم اجازه داری؟ آقای روتلج اومدن اردکتی ببیند کدوم اردک؟ خود تو به خرید نجد آه اردک پسر اما میگی؟ <تصفيق> آقای دلیم خوب گوشفنین چی میگم؟ ما شاهدی داریم که حاضر گواهی بده شما اردکی داریم که تخم تلایی میذاریم تخم تلایی؟ چه گوره احمقانه ای بود که تو کردی تخمه اردک که در دلار فروختی میدونی که بابت اون یه سنت مالیات بدی اون اردک ها یک منبع ملیه اون این ملی امن اردک شما باید تحت حمایت دولت آمریکا قرار بگیرد شما چه مدرکی دارین که اردک موکلم تخمه سلاوی میذارم راستشو بخواید شنیدم وقتی امر بدن اردک تخم میذاریم همینطوری خودام این کارو کافیه پارس کنید الان اردک میارم عجله نکن تو حقوقی داری میل دارم با معاکلم صحبت کنم فقط سی ثانیه وقت داریم عقل تو از دستتی آبه فکرشم نکن فرید با نوت عوضی پرس میکنم تخم نمیذاره مطمئنی که به ما نار رو نمیذاره. امکان نداره الان میرم اردکی میرم نه آلبرت بهتر من برم ممکن اردکو به نده این روزا میونش با تو خوب نیست بکرد آنی از اون زن منفق نشم بالا نیست اردک؟ نه جیمی از پنجره رفته رئیز اردکش هم برد هیچ کدو میستن؟ یعنی به با هو قیزه خفش و هوپه اقه خود که رو همه بایست دین اینجا خفش میکنم برید پیسر اما پیدا کنیم بکرد اسمیت فاربست بیرون همه جره خوب بگردین هوپهر تو با من بیا هرکه بری میاد چاکی درست میگه باید اردک رو پیدا کنی اردک نه پسرامو پیدا کنیم ها آو خانم اوفر خانم اوفر شما ندیدین پسر ادالی به دو از منزلش خارج بشه با اردک چرا دیدم آم. دیدم جیمی دو تا از گاراژ برداشت فرار کرد از کدوم طرف رفت از این طرف اوه کوچیکی هر بکنی این فان بس بیاین بریم اون بالا گیره چه حواست کوزمگی کار نیست این چاکی چه بلاخی می خسرده که نایورده بودید تلاش میکنید Ooh. <laughs> امیانه بگردین ای منو بولان کنین دیدید باله میخواد بیاد ای اینجا که نیست نه ای تو نیست ای شما ها آو اوماله چی کار میکنین بیام با ببینم آ ببخشین آقا ما کارمند دولتیم داریم انجام وظیفه میکنیم اینم کارتش شناساییم ما میدونیم که یه اوردکو کامیونیتی اوردک ای چی شو فهمیدا لا بوده یم سابقه نه اوردک کجا باید بارا چپلو هره بگرد بزن به چاکه ها چیلی؟ بسیار خوابت شاک چرا بگردید؟ اینجا که از دریه زوندید یه معامله بگیره همش اونو معامله که یه C'est so, petite musique, des miseries Minä minä en jo پارکینگیرشون گیرشون بردیم دیگه نمیتونن فرار کنن بسیار خوب زود مترق بشین یاله مترق بشین ما معمور دولت اینه انجام وظیفه. معمور دولت من اینا رو نیفهمم باید خسارت منو بپردازم باید قطعا رفتم دو اون پارکینگ چه بیارین اینجا؟ کس من اونجاست قرم این حرفه به خرج من نمیلین این اراغ خواهش میکنم پولامو بگیرین اجاله دارم باید درم مردم دیگه کنار این فان را و من چه؟ خب پیادشی زد باش زد باش باش The fact that we're going to be Up to the summer band, he's standing there. جات مینا جمی تکون خفسان تکون خف من بوچو قرم پیدا جمی دستت بده من تو فقط چالی رو میخای مگه نه جمی زود باش دستت بده به من تاسی جو برو پیدا دکره شوپر. پدر نظر چارلی رو به بران، نظر او رو به متاسفم پسرم، دیگه کاری از ناسی من برنمیاد. چارلی، چارلی، چارلی. آو. با جانی دیس، خونده بینار. متاسفم پسرم، متاسفم. می‌بینیم به نفع خود چارلی که تحت حمایت دولت باشه می‌فهمی؟ جمی برم خونه همه چی برنت شهر میدم باشم؟ خدا فضیون. نه شما به منزل بر نمی گردین آقای دلی. شما باید همراه ما بیاین. چون بازداشتیم چرا؟ به اتهام حمله تلای غیرمجاز که مغایر با قانون دولتم هم ولی عمدی نمیدیم امتحسفم بریم دلیم تو بچه خوش شانسی هستی دوست من شانس بسرم از من متنفره سروتم از دست دادم بازداشتم شدم تزده میگی شانس بردم آره. چون وکیل کارکشتهی داری که ازت دفاع خیلی موز شکرم برید کنال <سؤال> رو برمید برید کنال رو خواهیش بگنم برید کنال متضبب برمید متضبب برود نداره این یه دستور متضبب بپرمید خواهیش بگنم نداره <تصفيق> آی شما به چشم خودتون دیدین اردک تخمه تلایی بذاره؟ بله قرباد خود شما محرکه این کار بودین؟ همینطور قرباد ممکنه به مام نشون بدین؟ با کمالی برق قرباد نوتش عوضیه مکنه ولی جناب ایشون درست اجرا نمی کنم بگیر بشین این چیزیه که حالا باید بایدالنی بشه اگه اون اردک میتونه تخمه تلایی بذاره همین حالا باید مسجل بشه قربم اگه من مرتکب عمل خلافی شدم حاضرم مجازت بشم تو تو از دست دادی الان دیگه حاضرم مردکی از دست بدم چون بالاخره پی بردم که در زندگی چیزهای مهمتری هم هست ببخشین الاتی تو را چالی. رف رف رف رف رف تو خب بیشتری ببین چیه؟ حالا که آبروت به دلی سرکو تموم شد قرونده <تصفيق> بایگاری می‌شود. دادگاه تحتیل هم آی رئیس متهم در بانکهای مختلف که هزار دلار موجودی داری خب خوش به حالش ولی متأسفم که پس از کسر ماریت بردرامت چیزی از این پول برای آقای دالی باقی نمیمونه تا که بیقابلی اتا دردسری برای ما درست کردی لطفا بگیرمش متشکرم علی جناب ولی شما در مورد بیقابلیت بودن این ارده اشتباه کردین منم واقعا متصفم که زودتر برزش این ارده که پینا بردن برای همیشه بله پسرم برای همیشه ja että se on korrekoulutuksen saram. Ja että